گناه مرغ خانگی روزی بود و روزگاری بود یک روز یک باز شکاری را با تیر زده بودند که پس از مدتی پرواز در افتاده بود و ناله میکرد در آن نزدیکی یک مرغ خانگی به دانه خوردن مشغول بود وقتی مرغ نالهی باز شکاری را شنید نزدیکتر آمد و گفت بالا دور است اگر کمکی از دست من برایت در خدمتگذاری حاضرم. ام باز شکاری گفت اگر کمکی هم از دستت برایت نمیخواهم کاری بکنی از من دور شو که هرگز من و تو نمیتوانیم با هم بسازیم و هیچ از اخلاق تو خوشم نمیآید. مرغ خانگی گفت خواهش میکنم کم لطفی نکنید مگر من چه گناهی کردم که شما از دیدار من بیزار هستید؟ بازش کاری گفت ای به تو این از که نمک ناشناس هستی و از وفا و جوانمردی بویی نبرده ای و من بزرگمنش و شد جوانمردم و ننگ دارم از اینکه با مردم بی وفا آشنا باشم مرغ خانگی از این حرف تعجب کرد و گفت چرا به من تهمت میزنی و بی دلیل سخن میگویی؟ مگر از من چه بیوفایی دیده ای که اینقدر در نظر تو بد هستم در صورتی که من مرق اهلی هستم و تو وحشی هستی باز شکاری گفت علامت بیوفایی تو این است که آدم‌ها درباره تو اینقدر خوبی می کنند آب و دانه می دهند جا و منزل می دهند. و شب و روز در پرورش و نگاهداری تو کوشش می کنند. و تو از لطف و مهربانیان ها گوشه یا داری ولی بعد از همه اینها هر وقت که میخوان تو را بگیرند از جلوی آنها فرار میکنی حق نمک نمیشناسی و از ارباب خود میترسی ولی ما بازهای شکاری با اینکه جانوری وحشی هستیم همین که چند روزی با کسی آشنا شدیم و از دست او نان و نمک خوردیم وفاداری میکنیم برای آنها شکار میکنیم و هرقدر هم از ایشان دور باشیم تا ما را صدا می کنند یا سوت میزنند زود برمیگردیم و روی دست و شانه آنها مینشینیم و هیچ فرار نمی کنیم و از مرغ های اهلی هم خودمانیتر تر هستیم مرغ خانگی جواب داد حالا که با دلیل سخن گفتی جوابم را با دلیل میدهم گاهی علت اینکه مردم یکدیگر را گناهکار می‌دانند و دیگری را بد می‌شمارند همین است که از دردهای دل یکدیگر خبر ندارند و تو هم در حق من همین اشتباه را می‌کنی تو فقط گریختن مرا دیده ای و از درد دل من خبر نداری چون در برابر خوراکی که به تو می‌دهند شکاری می‌کنی و من در برابر خوراکی که می‌خورم تخم می‌کنم تا اینجا هر دو با هم مساوی هستیم اما علت باز آمدن تو و علت گریختن من این است که تو هرگز یک باز شکاری را بر سیخ کباب ندیده ای و ترس جان نداری و من بسیار مرغ خانگی را بر سیخ کباب و در ظرف بریان دیدهام و بیم جان دارم. اگر تو همجنسان خود را بر سیخ کباب و روی آتش میدیدی هرگز به آدم ها نزدیک نمی شدی و اگر من بام به بام می گریزم تو کوه به کوه می گریختی. آیا این سخن را قبول نداری؟ باز شکاری انصاف داد و گفت راست میگویی من فقط ظاهر کار را دیده بودم و از اینجا معلوم شد که هرگز درباره مردم به ظاهر قضاوت نباید کرد. بسیار کارهای مردم هست که به نظر ما گناه ایشان است اما اگر حقیقت حالشان را بدانیم شاید بر آنها ببخشیم و بدانیم که حق با ایشان است.